سوره نساو منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ورسا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام به نام الله که بخشاینده رو با رحمت است. ای مردم، حرمت پروردگارتان را نگاه دارید. پروردگاری که همه شما را از یک نفس خلق کرد و همسر او را از جنس خودش آفرید. سپس از آن دو، مردان و زنان بسیاری را به وجود آورد و حرمت خدای را نگاه دارید که هرگاه از یک دیگر چیزی می خواهید سوگند او را می خورید. و نیز با خیشاوندان خود بد رابطه مکنید که خداوند مراقب رفتار شماست و که یتیمان بزرگ شدند اموال آنها را به خودشان بدهید و اموال بد خود را با اموال خوب آنها عوض نکنید و با مخلود کردن اموال آنها با اموال خودتان آن را نخورید زیرا این گناهی بزرگ است و چنانچه میترسید اگر با دختران یتیم ازدواج کنید عدالت را رعایت نکنید پس با زنان دیگری که برایتان حلال است و میپسندید ازدواج کنید دو یا سه یا چهار زن و باز اگر ترسیدید که نتوانید عدالت را بین آنها رعایت کنید فقط با یک تن ازدواج کنید و یا با آن که مالکش شده اید زیرا این کار در جلوگیری از ستم موثرتر است و مهر زنان را با تیب خاطر تماماً به آنها پرداخت کنید و اگر آنها چیزی از آن را به شما بخشیدند حلال و گوارایتان خواهد بود و اموال متعلق به سفیهان را که در دستتان است و خداوند آن را باعث بقای زندگی مادی قرار داده به آنها نسپارید اما به وسیله آن آنان را روزی دهید و لباس بپوشانید و همواره با آنها با رفتار و سخنان شایسته برخورد کنید و یتیمان را هنگامی که به سن ازدواج رسیدند امتحان کنید چنانچه متوجه رشد عقلی آنها شدید اموالشان را به خودشان بدهید و پیش از آنکه به سن بلوغ رسند اموالشان را تمکارانه و از روی اسراف نخورید و آنان که توانگرند به عنوان دست مزده حفظ کردن اموال چیزی از اموالشان بر ندارند بلکه نیازمند است دست موز به میزان عرف بردارد. و هنگامی که انبالشان را دادید، شاهدانی را بر آنها گواه کنید و بدانید خداوند برای حساب کشیدن کافی است. مردان را از آنچه چه پدران و مادران و نزدیکان به ارث میگذارند نصیبی است و زنان را نیز از آنچه چه پدران و مادران و نزدیکان به ارث میگذارند نصیبی است. خواه کم باشد، خواه زیاد و این سهمی تعیین شده است و اگر هنگام تقسیم ارث خیشاوندان و یتیمان و درماندگان نیز آمدند به آنها هم چیزی بدهید و با آنها با سخن و رفتار پسندیده برخورد کنید آنان که بعد از خود بر آینده فرزندان کوچک و ناتوانشان بیمناکند باید از این بیمناکی هیچ عبرت بگیرند و تقوای خدا پیشه کنند و همباره سخنی استوار و معقول بگوگند آنها که انوال یتیمان را ظالمانه میخورند همانا در شکمهایشان آتش میخورند و به زودی در دوزخ شلوور میگردند خداوند شما را در مورد فرزندانتان وسییت می کند. بدانید سهم پسر دو برابر دختر است و اگر همگی دختر باشند و بیش از دو تن هم باشند دو ثبوم میراث متعلق به آنهاست و اگر یک دختر بود نصف میراث برای اوست و به پدر و مادر میت هر کدام یک ششم میراث میرسد اگر میت فرزندی داشته باشد و اگر فرزندی نداشته باشد تنها پدر و مادر از او عرص می‌برند. برای مادر او یک سوم است و بقیه از آن پدر است. و اگر او برادرانی دارد، مادرش یک ششم می‌برد. و همه اینها بعد از انجام وسیتی است که او مقرر کرده و نیز بعد از پرداخت همه بدهی هاست. ها شما نمی‌دانید پدران و مادران و فرزندانتان، خدا یک برای شما نافع‌ترند اینها حکم خداوند است و خدا دانا و حکیم است نصف میراث زنانتان برای شماست اگر آنها فرزندی نداشته باشند و اگر فرزندی داشته باشند یک چهارم از آن شماست آن هم پس از انجام وسیعتی که کردند و ادای بدهی ها. و برای زنان شما یک چهارم میراث شماست اگر فرزندی نداشته باشید و اگر برای شما فرزندی باشد یک هشتم از آن آنهاست. بعد از وسیعتی که کرده اید و ادای بدهی ها. و اگر مردی باشد که خواهر یا برادر از او ارث میبرند یا زنی که برادر یا خواهری دارد سهم هر کدام یک ششم است اگر برادران و خواهران مادری باشند و اگر بیش از یک تن باشند آنها در یک سوم شریکند آن هم پس از انجام وصیتی که شده و ادای بدهی ها به شرط از طریق وصیت و اقرار سوری به بدهی به ورثه ضرر نزند این وصیت خداوند است و خدا دانا و بردبار است اینها احکام الهی است و هر کس از خداوند و پیامبرش اطاعت کند او را وارد بهشت نماید که نهرها در آن جاری است و هم وارد آنجا خواهد بود و این یک پیروزی بزرگ محسوب می شود و هر کس از فرمان خدا و پیامبرش سرپیچی کند و از احکام خدا تجاوز نماید او را به آتشی داخل کند که در آن جاویدان خواهد بود و برای او عذابی خار کننده است و کسانی از زنان شما که مرتکب زنا شدند پس چهار شاهد مسلمان بر عمل آنها بطلبید و اگر گواهی دادند آن زنان را در خانه نگه دارید تا مرگشان فرار رسد و یا اینکه خداوند راهی پیش پاگشان بگذارد و از میان شما آن مردان و زنانی که همسر ندارند مرتکب زنا شدند آنها را فقط آزار رسانید و اگر توبه کردند و به عمل نیک گرویدند از آنها درگذرید زیرا خداوند بسیار توبه پذیر و باگذشت است این بتوبه علی الله للذین یعملون بی جهالتی ثم من قریب، فاولائك يتقبل الله عليهم وكان الله حكيما و پذیرش توبه از جانب خداوند برای کسانی است که کار زشتی را از روی جهالت انجام میدهند. و سپس به سرعت توبه میکنند. خداوند توبه چنین افرادی را میپذیرد. بدانید خداوند آگاه و حکیم است برای آن دسته که کارهای زشت مرتکب میشوند و هنگامی که مرگشان فرامی می میگویند الان توبه کردن توبهی وجود ندارد و نیز برای کسانی که با کفر و بی ایمانی از دنیا می روند این گونه است آنها که ثانی‌اند که عذابی دردناک برایشان مهیا کردیم ای. ای کسانی که ایمان آورده اید بر شما حلال نیست که با آزار رساندن به زنان از میراث آنها استفاده برید و آنها را تحت فشار قرار مدهید تا قسمتی از را که به آنها داده اید باز پس گیرید مگر آنکه مرتکب عمل زشت آشکاری شده باشند و بدانید که باید با زنان به نیچی رفتار کنید و اگر از آنان کراحت دارید سریعا قصد طلاق نکنید ان شيئا الله فيه خيراً كثيراً چه بسا چیزهایی که خوشاگند شما نباشد اما خداوند در آن خیر و برکت بسیار گذاشته است و اگر چنان چه خواستید زن دیگری را به جای همسرتان برگزینید و مال فراوانی هم به عنوان مهر به او پرداخته اید، چیزی از آن را پس نگیرید آیا برای پس گرفتن آن به تهمت و گناه آشکار متوصل می شوید؟ به آن را باز پس می گیرید در حالی که شما با یک دیگر رابطه و آمیزش کامل داشته اید و آنها هنگام ازدواج از شما پیمان محکمی گرفتند و با زنان پدرانتان ازدواج مکنید مگر آنکه قبل از نزول این حکم انجام شده باشد زیرا این کاری زشت و تنفرآور و راه نادرستی است حرام شده است بر شما مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان مه هایتان به خاال هایتان و دختران برادرهایتان و دختران خواهرانتان و مادرانی که شما را شیر دادهاند و خواهران رضائی شما و مادران همسرانتان و دختران همسرانتان که در دامان شما پرورش یافتهاند. البته از همسرانی که با آنها آمیزش جنسی داشتشته اید و چونناکه آمیزش جنسی نداشتشته اید کی نیست. و نیز زنان پسرانی که از نسل شما هستند و همچنین ازدواج با دو خواهر همزمان از این پس همه اینها بر شما حرام است مگر آنکه قبل از نزول این وحی به وقوع پیوسته باشد بدانید خداوند بسیار آمرزنده و باگذشت است و نیز زنان شوهردار از هر دین که باشند بر شما حرام است جزان کسانی که سرپرستیشان را عهدهدار دار شده اید اینها احکام الهی است که بر شما مقرر می شود و غیر از اینها که حرام بودنشان ذکر شد همه بر شما حلالند که با صرف اموال خود آنان را به نکاح در بیاورید در حالی که پاک دامن باشند و از زنا خودداری نمایند و زنانی را که از آنها تمتع می گیرید واجب است که مهرشان را پرداخت کنید و بر شما باکی نیست چنانچه غیر از مهر معین توافقات دیگری کرده باشید بدانید خداوند آگاه و حکیم است و کسی که استطاعت ازدواج با زنان مؤمنه و متشخص را ندارد می تواند از کنیزان میان خودتان آنهایی را که مؤمنه هستند به انتخاب کند و خداوند مراتب ایمان شما را می داند. همه از جنسی یک دیگری پس با ازن سرپرستشان آنها را به نکاح خود درآورید و مهر آنها را به نهو شایستهی پرداخت کنید و باید که پاک دامن باشند نه بی و نه آنهایی که پنهانی دوست می گیرند به هنگامی که شوهردار شدند اگر مرتکب زنا شوند، حد آنها نصف حد زنان آزاد است و این برای کسانی از شماست که بیم دارد از بی همسری رنج بیفتند. با این همه اگر صبر پیشه کنید برای شما بهتر است و خداوند بسیار آموزنده و با است و خداوند می با این احقام راه درست را بر شما آشکار کند و شما را سنت های حسنه پیشینیان راهنمایی کند و شما را بیامرزد و بدانید که خداوند دانا و حکیم است خداوند میخواهد توبه شما را بپذیرد اما کسانی که پیروی شهوات میکنند میخواهند شما به انحرافی بزرگ بیفتید بدانید خداوند میخواهد بر شما آسان بگیرد چرا که انسان ضعیف آفریده شده است ای کسانی که ایمان آورده اید انبال یک دیگر را به ناحق مخورید مگر از راه تجارتی که هر دو طرف و آن راضی باشید و اقدام به خودکشی مکنید بدانید که خداوند نسبت به شما با رحمت است و هر کس از روی تجاوز و ستم چنین کند او را به آتش خوابی مفکند و چنین کاری برای خدا سهل است این تجتنبوا كبائر که بعدقامتون هاو کفرران کو س وندخلكم مدخلا و نو و اگر از گناهان هاون کبیره ای که از آن نه شده ای اجناب کردید گناهان دیگر شما را محو کرده و شما را به جایگاهی نیک و پر نعمت وارد میکنی. هیچگاه هیچگاه هایی را که خداوند به دیگران داده و باعث برتری آنها نسبت به دیگری است تمنا نکنید بدانید مردان را از دستاوردشان بهره و نصیبی است و زنان را نیز از دستاوردشان بهره و نصیبی پس نعمت را از فضل و رحمت الهی طلب کنید زیرا خداوند بر هر چیزی آگاه است. برای همه وارسانی قرار دادیم که از میراث پدر و مادر و خیشان خود ارث برند و نصیب هر کس را که با او پیمانی دارید پرداخت کنید. زیرا خداوند بر هر چیزی شاهد و ناظر است. مردان در زندگی مشترک سرپرست همسران خود هستند از آن جهت که خداوند برخی را نسبت به برخی دیگر برتری داده است و نیز این که مردان از مال خیش نفقه می دهند پس زنان شاگسته فرمان بردار خداوند و در غیاب شوهرانشان حقوق آنها را حفظ می کنند و حرمت فرمان خدا را نگاه می دارند. اما آن دسته از زنان که از و نافرمانیشان بیم دارید ابتدا موعظهشان کنید اگر موثر نبود از مقاربت با آنها دوری کنید چنان باز هم مفید نبود تنبیهشان کنید و اگر فرمان بردار شدند دیگر نسبت به آنها راه بیداد نگیرید بدانید خداوند بلند مرتبه و بزرگ است و اگر از جدایی بین زن و شوهر بیم داشتید یک داور از خانواده مرد و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید چنانچه آنها نیت اصلاح داشته باشند خداوند میانشان توافق ایجاد می کند. بدانید خدا آگاه و داناست پس خداوند بزرگ را پرستش کنید و هیچ چیز را شریک و همتای او قرار ندهید و به پدر و مادر و خیشاوندان و یتیمان و درماندگان و همسایه دود و نزدیک و دوست همنشین و در راه مانده و نیز به بندگان خود نیکی و احسان کنید و بدانی خداوند متکبران و فخر فروشان را دوست ندارد و کسانی که هم خود بخل میبرزند و هم دیگران را به بخل ورزی وادار میکنند و برکاتی را که خداوند به آنها داده پنهان مینمایند و انفاق نمیکنند بدانند که برای ناسپاسان عذابی خارکننده مهیا کرده‌ایم و کسانی که انبال خود را ریاکارانه انفاق می کنند در حالی که نه خدا را باور دارند و نه روز قیامت را مثل کسی است که شیطان قرین و همنشین اوست و چه بد همنشینی است این شیطان آخر چه ضرری بر آنهاست اگر به خدا و روز حسابرسی ایمان داشته باشند و از آن چه خدا روزیشان کرده انفاق کنند بدانید خداوند به احوال آنان آگاه است بدانید خداوند بزرگ حتی به اندازه زرری زر نمی کند. و اگر کار خیلی در میان باشد آن را دو برابر کرده و از جانب خود پاداش بزرگی عطا می کند و چگونه از حال آنان در آن روزی که از هر امتی نسبت به عمل کردشان شاهد و گواهی بیاوریم و تو را نیز شاهد و گواه این امت برگیریم. در آن روز کسانی که در زندگی کافر و ناسپاس بودند و از فرمان پیامبر سرپیچی کردند آرزو می کنند که ای کاش با خاک زمین یکسان می شدند، زیرا هیچ سخنی را از خداوند پنهان نتوانند کرد. ای کسانی که ایمان آورده اید در حال مستی نماز نخوانید، تا زمانی که به حوش باشید و بفهمید که چه میگویید همچنین در حال جنابت تا زمانی که گوست کنید مگر اینکه در راه سفر باشید و اگر بیمارید و یا مسافر و یا غذای حاجت کرده اید و یا با زمان آمیزش جنسی داشته اید و آب نیافتید پس با خاک تمیز تیمم کنید و صورت و دستهایتان را با آن خاک محس کنید. بدانید خداوند بزرگ بخشنده و آمورزنده است. آیا ندیده ای کسانی را که بهره و نصیبی از کتاب خدا با آنها داده شده اما به جای هدایت گمراهی می خرند و می خواهند شما هم گمراه و غیران باشید؟ خداوند دشمنان شما را بهتر می شناسند. بدانید که دوستی خدا و یاری او برای شما کافی است. برخی از یهودیان به تحریف سخنان می‌پردازند. می‌گویند شنیدیم و سرپیچی کردیم یا بشنو و هرگز نمی‌شنوی و یا رائنا ما را تحمیق کن تا با زبان خود حقایق را دگرگون کنند و به دین خدا طعنه زنند. در حالی که اگر میگفتند گفتند شنیدیم و اطاعت کردیم و یا بشنو و مهلت مانده هم برایشان بهتر بود و هم به واقعیت نزدیکتر. اما خداوند به خاطر ناسپاسیشان آنها را نفرین کرده است و به جز اده کمی از آنها ایمان نخواهند آورد. ای کسانی که کتاب آسمانی به شما داده شده است. به قرآنی که نازل کرده این همان که کتاب شما را هم تایید می کند، ایمان بیاورید. پیش از آن که نقش هدایت را از چهره هایی محف کنیم و صورتها را به قفا و به گمراهی پیشین برگردانیم و یا همچنان که اصحاب سبت را نفرین کردیم، آنها را هم نفرین کنیم بدانند که فرمان خداوند شدنیست. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد اختری اثما عظيما بدانید خداوند هر گناهی را بغیر از شرك به خودش در مورد هرکی بخواهد می آموزد زیرا کسی که برای خداوند شریک و همتای قائل شود حقیقتا افتراء و گناه بزرگی مرتکب شده است آیا ندیده ای کسانی را که خود را پاک و متبر نشان میدهند؟ حال که این خداوند است هر که را بخواهد پاک و قابل ستایش میگرداند بدانید به هیچ کس حتی به بدر رشته باریکی که در شکاف از خرماست خورماست زور نمی شود ببین چگونه بر خداوند بزرگ دروغ و افترا می‌بندند. بدان که همین دروغ برای اثبات گناه آشکارشان کفایت می کند. آیا نمی بینی کسانی را که بهره و نصیبی از کتاب آسمانی و آنها داده شده اما به ساهران و بوتان ایمان می‌آورند و در باره کافران می‌گویند که راه آنها نسبت به راه اهل ایمان به هدایت نزدیکتر است؟ آنها کسانی هستند که خداوند بزرگ نفرین چان کرده است و کسی را که خداوند نفرین کند هیچ یار و یاوری برایش نیابید آنها اگر نصیبی از حکومت و فرمان داشته باشند هرگز برای مردم حقی قائل نیستند و ای به آنها نمی رسانند. و حتی به نعمتهای خدادادی مردم نیز حسادت می در حالی که ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنها فرمان روایی بزرگی عطا کردیم پس برخی از آنها به آن ایمان آوردند و برخی دیگر مانع توسعه شدند مطمئنن یا آتش دوزخ آنها را کفایت می‌کند. کند کسانی که آیات نجات بخش ما را انکار کردند به زودی آنها را به آتشی خواهیم افکند که چون پوستشان زایل شود پوستی دیگر بر آنها به تا عذاب را بچشند بدانید خداوند پیروزمند و حکیم است و کسانی که به حقایق ایمان دارند و عمل سراسر خوبی و خدمت است. به بهشتهایی هایی که نرها در آنجا جاریس وارد کنیم تا جاودانه در آنجا بمانند و با همسران پاک و بیعیوی بی که برای آنها آفریده شدند در زیر سایه های گسترده و فرهبخش جایشان دهید. خداوند به شما دستور میدهد تا ها را به سلامت به صاحبانشان برگردانید و نیز هرگاه خواستید بین مردم قضاوت کنید با عدل و انصاف حکم کنید خداوند چه خوب شما را موعظه می کند. بدانید که خدا شنونده و بیناست ای کسانی که به حقایق ایمان دارید از خداوند اطاعت کنید از پیامبر و صاحبان راستین حکومت از خودتان اطاعت کنید و اگر در چیزی اختلاف کردید برای داوری آن را نزد خدا و پیامبر مطرح کنید چون آنچه به خدا و روز حسابرسی ایمان دارید این کار برای شما خیر و عاقبتی نیکو دارد آیا نمی بینی آنهایی را که گمان می کنند به آنچه که بر تو و قبل از تو نازل شده ایمان دارند در حالی که می خواهند قضاوت و داوری را به تاغوت واگذارند حالان که به آنها امر شده بود که به تاغوت کافر شدند. بدانید که شیطان میخواهد آنها را گمراه و حیران کرده و به بیراه های دور از حقیقت بکشاند. و هنگامی که به آنها گفته شود به سوی کلام خدا و پیامبر بیایید منافقان را می بینی که از تو روی پس چگونه است؟ هنگامی که به خاطر عمل کردشان به آنها می رسد به سوی تو می آیند و به خدا قسم میخورند که نیت ما جز خوبی و توافق و وحدت چیز دیگری نبوده است آنها کسانی که خداوند بزرگ آنچرا که در قلبهاشان میگذرد گذرد می پس از آنها درگذر و موعزشان کن و با بیانی رسا نتایج اعمالشان را به آنها گوش زد نمان هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه به فرمان خداوند از او اطاعت شود. چون مخالفان به خود ستم کرده به سوی تو آمده بودند و از خداوند آمرزش خواسته بودند پیامبر نیز برایشان طلب آمرزش میکرد. و در این حال خداوند بزرگ را به پذیر و باگذشت می آفدند و این گونه نیست به پروردگارت قسم که اهل ایمان نیستند مگر آن که در نزاع و اختلاف خود تو را و داوری به طلبند که در این صورت مطمئنا از حکمی که تو می ناراضی نشوند و کاملا تسلیم آن گردند و اگر بر آنها مقرر میکردیم کردیم که نفستان را بکشید و یا ترک دیار خود کنید مسلما به جز اده کمی همه از آن سرپیچی میکردند. کردند اگر به موزه هایی که میشدند عمل میکردند برایشان بهتر بود و موجب استقامت آنها میشد در این صورت ما نیز از جانب خودمان پاداشی بزرگ به آنها عطا می کردیم و بیشک به راه درست هدایتشان میکردیم و من جمع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنوا ذلك رفيقا خداوند و پیامبر را خالصانه اطاعت کنند بدون تردید در آخرت همراه آنهایی خواهند بود که خداوند نعمت بیکران عطایشان کرده است همچون پیامبران، گل نشینان و صداقت شهداغی از جانگوندشته و نیکوکاران با اخلاص و اینها چه دوستان و همنشینان خوبی هند. و این لطف خدادادی است و همین بس که خداوند بدان واقف است ای کسانی که ایمان آورده اید در مقابل دشمن آمادگی کامل خود را حفظ کنید و آنگاه دست دسته دسته یا به صورت جمعی به میدان روید و از میان شما کسانی هستند که سست عنصر و محافظ کارند هرگاه مصیبتی به شما وارد شود گویند خداوند بر ما مننت گذاشت که با آنها نبودیم و شاهد آن مصیبت نشدیم و اگر نعمت و برکتی به شما رسد تو گویی هیچگاه آشنای و مودت بین شما نبوده است و کاش ما هم به آنها بودیم و از این نعمت و پیروزی بزرگ برخوردار می شدیم کسانی که حیات جاوید را به زندگی دنیوی ترجیح می دهند باید در راه خدا جهاد کنند و کسانی که در راه خدا می با علم به این چه کشته شوند و چه پیروز گردند به زودی آنها را پاداشی بزرگ خواهیم داد پس چرا در راه خداوند برای نجات مردان و زنان و کودکان مستضعف نمی جنگید همانهایی که همباره می پروردگارا ما را از دیار ستمکاران خارج کن و از سوی خودت برای ما یاور و سرپرستی برگزین آنها که حقایق را باور دارند در راه خدا می جنگند اما آنها که کفر و ناسپاسی وجودشان را گرفته در راه تاغوت و تعلقات واهی پیکار میکنند پس بجنگید با هواداران شیطان بدانید که نیرنگ شیطان ضعیف است آیا ندیدی کسانی را که به آنها گفته شد فعلا اندیشه جنگ نکنید بروید نمازتان را بگذارید و زکاتتان را بپردازید اما آنگاه که فرمان جنگ داده شد جمعی از آنان چنان از مردم میترسیدند ترسیدند که گویی از خدا می ترسند و حتی بیشتر و وحشت زده گفتند پروردگارا چرا اکنون جنگ را بر ما واجب کرده ای چرا آن را اندک زمانی به تأخیر نینداختی ای پیامبر به آنها بگو ارزش زندگی دنیا اندک است و زندگی جاوید برای آن که عرمت فرمان خدا را نگاه دارد بهتر است و بدانید حتی به قدر دشته باری که موجود در شکاف استه خورما به شما ستم نمی‌شود. شود. هر جا که باشید مرگ شما را در آهوش خواهد گرفت اگرچه در برچهای بلند و مکم باشید. چنانچه خیر و خوبی با آنها رسد می‌گویند، این از جانب خداوند است. و چنانچه بدی و شرقی دامنگیرشان چود میگویند این از جانب توست ای پیامبر. بگو همه از جانب خداست چه بر سر این قوم آمده که این سخنی را نمیفهمند؟ اما تو این پیامبر هر خیری که به تو رسد از جانب خداوند است اما هر بدی که دامن گیرت شود از جانب خود توست ما تو را به عنوان پیامبر برای مردم فرستادی و گواهی خدا در این باره کافی است هر که از پیامبر اطاعت کند از خدا اطاعت کرده است و کسی که سرپیچی کند بر تو باکی نیست زیرا ما تو را برای نگهبانی آنها نفرستاده ایم در حضور تو اقرار می کنند که فرمان برداری اما وقتی از پیچ تو می روند گروه از آنها در شبنشینی هایشان غیر از آنچرا که تو می گویی باور دارند خداوند را که در شبنشینی هایشان می گویند می کند پس اچنان به آنها مکن و بر خداوند بزرگ توکل نما که توکل به خدا کارساز است افلا یتدبرون پس چرا در قرآن تدبر نمیکنند اگر قرآن از سوی غیر خداوند آمده باشد باید دران اختلاف فراوان میافتند و چون خبری از پیروزی و یا شکست و ناکامی را میشنوند بدون تحقیق همه جا جار میزنند در حالی که اگر آن را به پیامبر و یا پیشوایانشان ارجاع میدادند توسط قدرت تشخیصی که دارند باعث میشدند که آنها از ریشه های حقیقی خبر آگاه شوند و اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود بدون شک جز تعداد اندکی همگی شما از شیطان پیروی می کردید. پس در راه خداوند بزرگ پیکار کن و بدان که تو فقط مسئول عمل خودت هستی و اهل ایمان را بر این کار تشویق کن امید آنکه خداوند شما را از شر و آسیب بیدینان حفظ کند و بدانید که خداوند بزرگ هم مقتدر نافذ وهم مجازات کننده‌ای سخت است من يشفع شفاعه حسنه يكله نصيبهم منها ومن يشفع شفاعه سيئتي يكله كفل منها و الله على كل هر کس واسطه کار خوبی شود از آن کار خیر بهره و نصیبی میبرد و هر کس واسطه کار شری شود شرش به او هم میرسد و خداوند بر هر چیز اشراف کامل دارد و اذا به كان على كل شيء و هرگاه دیگران بر شما درود و تیهت گویند شما نیز بهتر از آن و یا لا عقل مثل آن را در جواب بگویید و بدانید که خداوند حساب همه چیز را دارد الله لا إله إلا هو لیجمعنكم إلی يوم القیامة لا ریب فیه ومن أصدقو من الله حدیثا إن الله است كه جزوه معبودی نیست بدون تردید همه شما را در روز قیامت كه شكی در وجود آن نیست گرد خواهد آورد آیا راستگوتر از خداوند کسی وجود دارد؟ شما را چه شده است که در رابطه با منافقین دو گروه گشتید مگر نمیدانید که خداوند به خاطر عمل حمایتش را از آنها برداشته و واجگونه کرده است آیا می آنها را راهنمایی کنید در حالی که خداوند گمراه و حیرانشان ساخته است بدان هر کرا خداوند گمراه و سرگردان کند هیچ راهی برایش نخواهی یافت بدانید که آنها آرزو دارند تا شما هم مثل آنها کافر و ناسپاس شوید تا در این زشتی با هم سهیم باشید آنها را به دوستی انتخاب مکنید مگر آنکه توبه کرده و در راه خداوند هجرت کنند و چنانچه سرپیچی کردند و بر ضد شما اقدام کردند هر جا آنها را یافتید اسیر کنید و در صورت احساس خطر بکشید و از میان آنان هیچگاه دوست و سرپرست و یاوری بر نگذینید. مگر کسانی که با هم پیمانان شما پیمان بستند و یا آنهایی که به سوی شما میآیند در حالی که نصر جنگ دارند و نه توان همکاری با شما بر ضد قوم خود را داره هستند. بدانید اگر خدا میخواست آنها را بر شما مسلط می کرد و توان جنگیدن به آنها میداد، پس اگر از شما منصرف شدند و قصد جنگ با شما را نداشتند بلکه پیشنهاد صلح کردند خداوند به شما اجازه نمی دهد آنها تردز و تجاوز کنید. و جماعت دیگری از آنها را می که هم میخواهند از دست شما در امان باشند هم از دست قوم خود اما هر زمان که آنها را به سوی فتنه بخوانند، با سر می روند. اگر اینها هم از درگیری با شما خودداری نکردند و پیشنهاد سور ندادند و از اقدام بر ضد شما دست نکشیدند هر جا آنها را یافتید یا اسیر کنید و یا بکشید که شما را بر آنها تسلطی آشکارا بخشیده اید. هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست فرد با ایمان دیگری را به قتل رساند مگر اینکه از روی خطا مرتکب این عمل شده باشد پس اگر کسی فرد با ایمانی را از روی خطا به قتل رسان باید به کفاره آن یک برده مؤمن را آزاد کند و خونبه های مقتول را نیز به خانوادهش پرداخت کند مگر که آنها خونبه را ببخشند و اگر مقتول، مؤمن، ولی از جماعت و قومی باشد که دشمن شما هستند فقط برده مؤمنی را آزاد کند و اگر از است که جز به هم پیمانان شما هستند هم برده مؤمنی را آزاد کند و هم خونبه ها را به خانواده پرداخت نماید و چنانچه برده ای نیافت به نیت توبه دو ماه پی در پی روزه بگیرد بدانید خداوند بزرگ آگاه و حکیم است و اما اگر کسی از روی عمد اهل ایمان را به قتل رساند جزای او جهنم است و در آن جاودان خواهد بود و خدا بر او خشم میگیرد و نفرین میکند زیرا خداوند برای او عذابی بزرگ محیا کرده است ای کسانی که ایمان آورده اید چون برای جهاد در راه خدا خارج میشوید تحقیق و تفحص کنید و غرق به دست آوردن مادیات دنیا و غنایم به کسی که به شما اظهار صلح و سلام کند مگوید مؤمن نیستی. تا بدین بهانه اون را از پای درآورده و غنیمتی بچنگ آورید. بدانید که های بزرگ و حقیقی نزد خداوند است. البته قبلا این چنین بودید ولی خداوند بر شما مند نهاد. پس تحقیق کنید. بدانید که خداوند بزرگ بر کردتان آگاه است اهل ایمانی که راحت طلبند و بی هیچ عذری در راه خدا پیکار نمی کنند هرگز با مجاهدانی که از جان و مال خیش می گذرند مساوی نیستند خداوند مجاهدانی را که از جان و مال خیش می گذرند بر ترک کنندگان جهاد برتری مهم می داده است خداوند همه را نسبت به عملکرد خوبشان بعدی پاداش نیک داده است اما مجاهدان را بر ترک کنندگان جهاد با پاداش بزرگتری برتری داده است آن هم برتری با درجاتی الهی همراه با آمرزش و رحمت بدانید که خداوند بسیار آمرزنده و باگذشت است و کسانی که به خود ظلم اند، وقتی فرشتگان جانشان را گرفتند از آنها میپرسند عمل چه بود؟ دست به توجیه برداشته و میگویند اگر میبینید بینید عمل خوبی نداریم به خاطر این است که ما را روی زمین مستضعف و ناتوان کرده بودند و فرشتگان گویند آیا زمین خدا وسیع نبود تا مهاجرت کنید و به نقطه دیگری بروید؟ بدون تردید جایگاه آنان جهنم است و چه بد سرنوشتی است این جهنم؟ فقط گروی از آنها استثنا می شدند و آنها مردان و زنان و کودکانی هستند که حقیقتا هیچ ای ندارند و راه به جایی نمی برند. امید آنکه خداوند از آنها درگذرد. زیرا خداوند بزرگ عفت کننده و آمرزنده است.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 و کان بدون تردید هر کس در راه خدا مهاجرت نماید در روی زمین از نعمتها و گشایشهای بسیاری برخوردار می شود و کسی که از خانه خود خارج شده تا به سوی خدا و پیامبرش مهاجرت کند و در این راه مرگش فرارسد بیشک پاداش او بر خداوند بزرگ است و بدانید خدا بسیار آمرزنده و باگذشت است. و انگامی که مسافر هستید بر شما گناهی نیست اگر از بیم آسیب کافران نمازتان را کوتاه کنید زیرا کافران دشمنان آشکار شما هستند و هنگامی که با اهل ایمان در میدان جنگ بست برپایی نماز را داشته باشید باید گروهی از اهل ایمان در حال که اصله خود را در برگرفتند با تو به نماز بیستند و گروه دیگر نگهبانی دهند و هنگامی که نماز را به پایان رساندند بروند از پشت مراقب شما باشند و ادهی دیگر که نماز نگزاردند بیاگند و با تو نماز برپا کنند آنها باید کلیه وسائل دفاعی و اسلحه خود را هنگام نماز با خود داشته باشند زیرا کافران آرزو می کنند تا شما از وسائل دفاعی و جنگ افزارهایتان قفلت کنید تا به یک باره بر شما یورش آورند و اگر ریزش باران آزارتان میدهد و یا اگر بیمار و مجروح هستید باکی نیست که اصله خود را زمین بگذارید ولی ساگر وسایل دفاعی را همراه داشته باشید بدانید خداوند عذاب خار ای برای کافران مهیا کرده است به هنگامی که نماز را به پایان بردید خداوند بزرگ را در هر حال چه نشسته، چه ایستاده چه خوابیده به پهلو یاد کنید و آنگاه که احساس امنیت کردی، نماز را آنگونه که شایسته آن است به جا آورید زیرا نماز برای اهل ایمان یک وظیفه معین است و در به دشمن و قلب برو سست و ناامید بشدید و اگر رنج و آزاری میبینید بدانید که آنها نیز چون شما در رنج آزارند با این تفاوت که شما به خداوند امید دارید در حالی که چنین امیدی برای آنها وجود ندارد بدانید خداوند بزرگ آگاه و حکیم است ما این قرآن را به حق بر نازل کردیم تا با آنچه خداوند با چشم یقین به تو آموخته در بین مردم حکم کنی و از خائنان حمایت نکنی و از خداوند بزرگ طلب آمرزش کن زیرا خدا بسیار آمرزنده و با گذشت است و برای دفاع از کسانی که به خود خیانت ورزیدند مجادله مکن زیرا خداوند هیچ خائن گناهکاری را دوست ندارد. زیرا آنها از مردم می‌ترسند. زشتکاریشان را پنهان می‌کنند، اما از خدا نمی‌ترسند. در حالی که خداوند همیشه با آنهاست. حتی در آن هایشان سخنانی بر زبان آوردند که موجب خوشنودی خدا نبود. بدان خداوند نسبت به عملکردشان اشراف کامل دارد. آری، این شمایید که در زندگی دنیا از آنها دفاع کردید اما کیست که در برابر خداوند و در روز قیامت از آنها دفاع کند و بکارتشان را بر اهده گیرد؟ بدانید کسی که عمل زشتی را مرتکب شود و یا ظلمی به خودش روا دارد سپس پشیمان شده از خداوند طلب آمرزش نماید، خدا را آمورزنده و باگزشت خواهد یافت هرکس گناه این شود به خودش زیان رسانده است و خداوند آگاه و حکیم است و این یک سب او اثما ثم یوم بهی بریعا فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا و که خطا یا گناهی مرتکب شود و آن را به گردن بیگناهی بیاندازد، بار بختان و گناه آشکاری را به دوش کشیده است و اگر فضل و رحمت خداوند بر تو نبود بدون شک گروه از دشمن بست گمراهی تو را داشتند حالان که آنها جز خودشان کسی دیگری را گمراه نمی کنند. و بدان که نمی هیچ زیانی بر تو وارد کنند زیرا خداوند قرآن و حکمت را بر تو نازل کرده و آن را نمیدانستی به تو تعلیم داده است بدان که فضل و رحمت خداوند بر تو بسیار بزرگ است هیچ خیری در بسیاری از نجواهایشان وجود ندارد مگر که کسی امر به نیکی و خدمت به دیگران کند و یا اقدام به اصلاح امور مردم نماید و کسی که به خاطر رضایت خداوند این کار را انجام دهد به زودی پاداش بزرگی به او خواهیم داد و کسی که بعد از آشکار شدن راه حق و هدایت به مخالفت با پیامبر برخیزد و از راهی برود که غیر از راه اهل ایمان است ما هم به همان راهی که دوست دارد او را برمیگردانیم و به جهنمش می و بد است این جهنم خداوند بزرگ کسی را که به او شرک ببرزد نمی آمور اما هر گناهی پایین تر از آن را نسبت به هر که سلاح بداند میبخشد. زیرا کسی که برای خداوند همتای قائل شود بدون تردید به بیراه های گمراهی و حیرانی افتاده است آنچه به جای خدا می چیزی نیست جز علاقه های بیروح و بیخاصیت و نیز شیطانی که سرکش و ویرانگر است نفرین خداوند بر شیطان آنگاه که گفت گروه از بندگان تو را به عنوان سهم خودم در اختیار خواهم گرفت و بدون تردید گمراهشان میکنم. و با آرزوهای واهی آنها را سرگرم میسازند و به انجام اعمال خرافی چون شکافتن گوشهای چهارپایان وادارشان می کنن. فرماندهیشان می تا آفرینش خدا را دگرگون کنند. بدانید هرکس کس شیطان را به جای خداوند به عنوان سرپرست و تکیگاه خود برگزیند بیشک زیان و آشکاری کرده است شیطان به آنها وعده میدهد و وجودشان را منلوب و از تمنا و آرزوهای واهی می کند. بدانید که وعده شیطان به آنها جز فریب و نیرنگ نیست آنها جایگاهشان جهنم است و هیچ راهی برای فرار از آن نمی و اما کسانی که به حقاقیق ایمان دارند و پیوسته عمل خوبی و خدمت است به زودی همه آنها را به بهشت هایی که نرها در آن وارد میکن و آنها در آنجا جاویدانند. این وعده حقی از جانب خداست و کیست که از خداوند بزرگ راستگوتر باشد. این خوشایند شماست و خوشایند اهل کتاب که کسی را که عملکرد زشت و پلیدی دارد به سزایش برسانید آن هم در روزی که، به غیر از خدا هیچ دوست و یاوری نمی آمد. کسانی که عمل خوب و مفید داشته باشند در حالی که به حقایق ایمان دارند چه مرد باشند و چه زن بدون تردید به بهشت وارد می شوند و کمترین ظلمی به آنها نخواهد شد و دین چه کسی زیباتر از دین کسی است که سراپای وجودش تسلیم خداوند شده است در حالی که نیکوکار است و از آیین پاک یکتاپرستی ابراهیم پیروی میکند. و این چنین است که خدا ابراهیم را به عنوان دوست خود برگزید بدانید آنچه در ها و آنچه در زمین است از آن خداوند است و خداوند بزرگ بر هر چیزی احاطه دارد از تو درباره زنان فتوا میخواهند بگو خداوند درباره آنها در این قرآنی که بر شما خوانده می شود فتوا داده است آنها در مورد زمان یتیمی که حقوقشان را پرداخت نمی کنید و میخواهید با آنها ازدواج کنید و نیز در مورد کودکان صغیر و ناتوان سفارش شده است با یتیمان با عدالت رفتار کنید و بدانید آنچه از خوبی و خدمت انجام دهید خداوند از آن آگاه است و این امرأت خافت من بعنها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیهما این يصلحا بینهما صلحا و الصلح و احضرت الانفس الشحوا ان تحسنوا وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا باگر زنی بیم میانداش که بی توجهی و دوری شوهرش از او باعث جدایی شود باکینی نیست کردو نسبت به صلح و سازش ما بین یک دیگر اقدام کنند زیرا صلح و سازش بهترین چیز هاست اگرچه مردم در این مورد بخل می اما شما نیکی کنید و گذشت داشته باشید و حرمت نگاه دارید زیرا خداوند نسبت به عمل کردتان آگاه است. البته هرچه تلاش کنید هرگز نمی توانید بین زنانتان عدالت را برقرار کنید اما تمام توجه و توانتان را معطوف یکی نکنید تا همسران دیگرتان را بلا تقلیف رها کرده باشید و اگر سازش کنید و حرمت نگاه دارید خداوند نیز بسیار بخشنده و با است و اگر سازگاری نشد و دو از هم جدا شدند خداوند هر دو را به فضل خیش بی نیاز زیرا خدا گشاگش دهنده و حکیم است و آنچه در آسمان ها، و آنچه در زمین است از آن خداوند است ما هم به شما و هم به اهل کتاب که قبل از شما بودند وسیعت کردیم که حرمت خداوند بزرگ را نگاه دارید و اگر کفر و ناسپاسی پیشه کردید بدانید آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست و خداوند بینیاز و در خرستاجش است. و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن خداست و خداوند برای نگهداری آنها کافی است. ای مردم اگر خدا بخواهد همه شما را از بین میبرد و مردم دیگری را جایگزین شما میکند و خداوند بر چنین کاری تواناست. هر کس پاداش دنیوی بخواهد بداند که هم پاداش دنیاوی و هم اخروی هر دو نزد خداست و خداوند بزرگ شنوا و بیناست ای اهل ایمان از برپا کنندگان عدل باشید گواهان راستگوی خدا شوید اگر اگرچه به ضرر خود یا پدر و مادر و نزدیکانتان باشد چه فقیر باشند و چه بینیاز بدانید که خدا در حمایت از آنها سزاوارتر از هر کس دیگر است پس از هواهای نفسانی تباییت مکنید که از راه حق و انصاف منحرف خواهید شد و اگر حقیقت را تحریف کردید و یا از آن دوری جستید بدانید که خداوند عمل کردتان آگاه است ای کسانی که حقایق را باور دارید به خداوند و پیامبرش و قرآنی که بر او نازل کرده و همچنین کتابی که پیش از آن فرستاده ایمان بیاورید و هر کس خدا و فرشتگانش و کتابهایش و پیامبرانش و روز حسابرسی را انکار کند بداند که در گمراهی و حیرانی سختی گرفتار آمده است بیشک خداوند آنهایی را که ایمان آوردند سپس کافر شدند، دوباره ایمان آوردند و باز کافر شدند و بر کفر و ناسپاسی خود هر روز افزودند نخواهد بخشید و به راه نجات هدایتشان نخواهد کرد مجدر به مرافقان که عذاب دردناکی در انتظارشان است کسانی که کافران را به جای اهل ایمان دوست و تکیگاه خود انتخاب کردند آیا؟ عزت و اقتدار را نزد آنها می جویند فَإِنَّ الْعِزَّتَ بدانید که تمامی عزت و اقتدار از آن خداوند است در قرآن خدا برای شما نازل کرد هنگامی که شنیدید آیات خدا را اددهی انکار و مسخره می کنند و آنان همنشینی نشینی مکنید تا به بحث دیگری بپردازند و اگر آنها را ترک نکردید شما هم یکی از آنان خواهید بود و بدانید که خداوند هم منافقان و هم کافران را در جهنم گرد خواهد آورد ادهی که همیشه مراقب شما هستند وقتی فتح و پیروزی از جانب خداوند به آورید گویند مگر ما با شما نبودیم و هنگامی که اهل کف پیروز شوند به طرف آنان رفته میگویند مگر ما شما را به مبارزه و عدم سازش با اهل ایمان تشویر نمی‌کردیم. کردیم بیشک خداوند در روز قیامت میان شما حکم خواهد کرد و خدا هیچگاه بی ایمانان را بر اهل ایمان مسلط نخواهد کرد منافقین میخواهند خدا را فرید دهند حالان که این خداست که آنها را فریب میداد و هنگامی که به نماز اقدام میکنند کنند کسل و بیروه و در برابر مردم دست به می میزنند و خدا را جز اندکی یاد نمی کنند حیران و دو دل بین کفر و ایمانند نه از اینها هستند و نه از آنها این چونین است وقتی خدا بخواهد کسی را در گمراهی گذارد برایش راه چاری نمی آمی. ای کسانی که حقایق را باور کرده اید، کافران ناسپاس را به جاق اهل ایمان سرپرست و تکیگاه خود مگیرید. آیا میخواهید با این کار در پیشگاه خداوند دلیل آشکاری علیه خودتان داشته باشید؟ بدان که منافقان در پایین ترین مرحله دوزخ قرار دارند و هیچ یار و یاوری برایشان نخواهید. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا أما كذانك توبه کردند وبا اعمال نيك جبران گذشته را نمودند و به خداوند اعتماد کردند و دین را فقط خالصانه برای خدا خواستند بیشک آنان همراه و همداستان اهل ایمانند و به زودی خداوند اهل ایمان را پاداشی بزرگ خواهد داد اگر شکرگزار و حرمت نگهدار باشید و به هقایق ایمان آورید هیچ عذابی از جانب خداوند دوامنگیرت نخواهد شد زیرا خداوند بعد شناس و آگاه است خداوند بلند کردن صدا به بدگویی و ناسزا را دوست ندارد مگر آنکه صدای مظلوم بیچاری باشد که به او ظلم شده است و بدانید که خداوند شنوا و آگاه است چه کار خوب را آشکارا انجام دهید و چه پنهان با آن اقدام کنید و نیز اگر از بدیها گذشت کنید بدانید که خداوند نیز مقتدری با است کسانی هستند که خدا و پیامبرانش را انکار می کنند و میخواهند بین خدا و پیامبرانش تفرقه بیندازند و میگویند ما بعضی را قبول داریم و بعضی را قبول نداریم و با این کار راه فرار و چاری برای خود دست پا کنند بدان که اینها کافر حقیقیاند و برای کافران ناسپاست عذابی خار کننده محیا کردیم بدانید کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آوردند میان احدی از پیامبرانش فرق نمیگذارند و به زودی پاداششان را خداوند خواهد داد زیرا خداوند بزرگ بسیار آمور زنده و باگذشت است ای پیامبر، اهل کتاب از تو میخواهند که از آسمان کتاب به برای آنها نازل کنی. بدان که آنها بزرگتر از این خواسته را از موسا داشتند آنجا که گفتم ای موسا خدا را نشان مانده، پس ساقه مرگ با به خاطر ظلمشان دامنگیر آنها شد سپس به حرکت زشت گوساله پرستی اقدام کردند آن هم بعد از آن که حقایق برایشان روشن شده بود اما دیگر بار ما از آنها گذشت کردیم و به موسا دلیل و معجزه آشکار عطا کردیم و بالای سرشان کوه تور را نگه داشتیم و در همان حال از آنها پیمان گرفتیم و گفتیم از دروازه بیت المقدس سجدگان وارد شوید و در روز شنبه از فرمان خدا سرپیچی نکنید به هر حال از آنان پیمان سختی گرفتیم و به خاطر پیمان شکنی انکار آیات خداوند کشتن ناحق پیامبران و نیز اینکه گفتند قلبهای ما در پرده است و سخن پیامبران را نمیفهمیم. از درگاه خدا رانده شدند بدانید خداوند به علت کفر و انکارشان و علبهایشان را از درک حقایق آجز نموده و جز اده اندکی ایمان نمی آورند و اینها هم به خاطر کفرشان بود و هم به خاطر بختان بزرگی که به مریم زدند و همین که گفتند ما مسیح عیسی پسر مریم پیامبر خدا را کشتند در حالی که نه او را کشتند و نه به صلیب کشیدند بلکه امر بر آنها مشتبه شد و کسانی که در مورد مسیح اختلاف می کنند در شک و تردیدند و به حقیقت ماجرا آگاهی ندارند و جز از زن و گمان خود پیروی نمی کنند بدانید یقینا مسیح را نکشتند بلکه خداوند او را به سوی خیش بالا بود و خدا مقتدری حکیم است و هر اهل کتابی سرانجام به حقیقت مسیح ایمان خواهد آورد هرچند در لحظه قبل از مرگش آنگاه که پرده ها کنار می رود و در روز قیامت مسیح شاهد و گواهشان خواهد بود و به خاطر ظلمی که یهود روا داشتند و نیز به خاطر مانع هایی که در راه خدا میکردند، بسیاری از چیزهای را که بر آنان حلال بود حرام کردیم و به خاطر دباغاورشان که از آن منع شده بودند و نیز به سبب خوردن اموال مردم به ناحق ما عذاب دردناکی را برای ناسپاسان آنها تدارک دیدیم اما آن دسته از آنان که در علم و آگاهی ثابت قدم و استوارند و نیز مؤمنانی که به آنچه به تو و قبل از تو نازل شده ایمان دارند و نماز به پا دارند و زکاعت انبالشان را پرداخت می کنند و به خدا و روز حسابرسی ایمان دارند به همه آنها پاداشی بزرگ عطا خواهیم کرد ما به تو وعی کردیم همان گونه که به نوح و پیامبران بعد از او وعی کردیم و نیز به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندانش و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وعی کردیم و به داوود زبور را عطا کردیم و پیامبرانی را پیش از این داستان و سرگذشتشان را برایت بیان کردیم و پیامبرانی را هنوز سرگذشتشان را براید نگفتید و بدان که خداوند با موسی سخن گفت پیامبرانی که بشارت دهنده و بیم دهنده بودند تا در پیشگاه خداوند بر مردم حجت تمام باشد و آنها بعد از پیامبران بحانه نداشته باشند و خداوند مقتدر و حکیم است و خداوند شهادت میدهد آنچه آنچرا که بر تو نازل کرده از روی علم و آگاهی خیش نازل کرده است فرشتگان نیز این گواهی را میدهند حالانکه حالان که شهادت و گواهی خدا کافی است بدانید آنها که به حقایق کافر شدند و مانع ورود مردم به راه خدا میشوند در گمراهی و حیرانی سختی گرفتار آمدند و خداوند ناصبان سونی کو ای را که ستم میکنند نمی آموزند و به راه نجات راهنمایی نمی کند مگر به راه جهنمی که قرار است در آن جاودانه بمانند و این کار بر خداوند آسان است ای مردم پیامبر به حق از جانب خداوند به سوی شما آمده است پس به او ایمان بیاورید که خیر شما در آن است و اگر انکار کنید بدانید آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست و خداوند بزرگ آگاه و حکیم است ای اهل کتاب در دینتان قلوب نکنید و در رابطه با خدا جز حق نگویید. بدانید که مسیح عیسی پسر مریم فقط پیامبر خداست و کلمه‌ای است که به مریم القا کرده است و روحی متعالی از اوست. پس به خداوند و پیامبرانش ایمان بیاورید و نگویید خداوند سگام است. این کلام را بس کنید که خیر شما در آن است. بدانید که الله خدای واحد است و او از اینکه فرزندی داشته باشد پاک و مبارز است زیرا تمام آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است برای اوست و خداوند بزرگ برای تدبیر و کار ها کافی است. هرگز مسیح عبایی ندارد که بنده خدا باشد حتی فرشتگان مقرب نیز این گونه هند و کسی که از عبادت و پرستش خداوند عباده داشته باشد و تکبر ببرزد بداند خداوند به زودی همه آنها را نزد خودش جمع خواهد کرد و اما کسانی که ایمان آوردند و عمل سراسر خیر و خدمت است. پاداششان را خداوند عطا خواهد کرد بلکه از فضل خود بر آنها خواهد افزود و اما کسانی که از پرستش حق عبا کنند و تکبر ورزند بدون شک عذاب دردناکی را آنها خواهد چشاند و هیچ یار و یاوری غیر از خداوند بزرگ نخواهند یافت ای مردم برهان و دلیل محکمی از جانب خدا برای شما آمده است زیرا برایتان نور آشکاری نازل کرده این اما آنان که به خداوند ایمان آوردند و به او توسل جستند به زودی آنها را به دریای بیکران فضل و رحمت قیش وارد می کند و به راه درست و نجات بخش هدایتشان می نماید ای پیامبر از تو فتفا می خواهند بگو خداوند در مورد کلاله میگوید اگر کسی بمیرد و فرزندی نداشته باشد و خواهری داشته باشد به آن خواهر نصف میراث میرسد و اگر خواهری بمیرد و برادری داشته باشد برادر میراث او را به ارث میبرد چون که خواهر فرزندی نداشته باشد و اگر دو خواهر از میتی بمانند دو سوم میراث را میبرند و اگر وارسان جمع برادران و خواهران باشند میراس بین آنها تقسیم می شود و برای برادر دو برابر سهم خواهر است خداوند احکام خود را برای شما بیان می کند تا گمراه و حیران نشوید. و بدانید که خداوند بزرگ بر همه چیز داناست. وإن كانوا إخوة رجاله ونساء أن فالذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء علي خداوند بلند مرتبه بود از این از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و و سلم